بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمین صلوات و السلام علی اشرف الأنبياء و خاتم النبيین و آله و صحبی اجمعین اما بعد پن زهم درس دروس شما ای رسول الله علیه و سلم تالیف امام ترمذی رحمه الله و اسكند فسی حجنا تجاردهمین باب باب ما جاє في صفة السيف رسول الله صلّى الله عليه وسلّم منشی زیک در مورد سيف يعني شمشیر رسول الله علیه و سلم ماده از حادث چراکتی داره بين نامه و مهر انگشتر و بین شمشیر ربطش اول دعوته بعد شمشیره این دو تا با هم دیگه ربطی سنگینی سختی داره همینطوری نیست این ترتیب همینطوری نیومده رسول الله صلی الله علیه و سلم همیشه اول دعوت میدادن اینطوری نبود که شمشیر بکشه بدون دعوت دادن نه نامه مینویش دعوت میداد نامه هاشم زیرش مهر میزد و از این بابه ابن قیم رحم الله میگه میگه که بالاترین جهاد قبل از اون جهاد که با تن باشه جهاد با قلم با نوشتن با توضیح و با دعوت دادن مردم به سوی دین قل هذه سبیلی ادعو الی الله علیم بصيره پس من دعوت مردم به سوی دین الله جل و علا ابو علم و بصیرات و هذه سبیلی ادعو الی الله قاید دلیل بر این میده که دعوت دادن از فضیلت بالای برخورداره و با دعوت هم با قلم، هم با شمشیره هم با قلم هم با شمشیر هر دو تقل اون چیزی که در کتاب های سیرت یاد شده از شمشیرهای رسول الله صلی الله علیه وسلم است. هر کدوم از اون شمشیرها هم نامی داشته که بلقینی در این دو تا بیت اون شمشیرها را یاد میکنه لهدینا من الاسیاف تسع رسوب و المخذم ذو الفقاری قضیب حتف و عضب من مخذام، الفقار، و قلعون ومعثورو الفجاری اینجا نه یاد می رسوب، رسو مخذم للفق تقضیب چهارمی پمی حد ششمی بتار، همی عب بعد 8شتمی و آخرین فجار نهمی این نه تاش هم شیر یاد شده برای و عليهاست سط کتابی سررت حالا چقدر صحت داره و اینا اللهعلم اون چیزی که داریم اینجا از احادیث که در این باب ورده امام ترملی رحمه الله پنج تا حیث اون چیزی داریم اینجا؟ در بحث شمشیرهای های رسول الله صلی الله عليه وسلم پنج تا حدیث که ورده. البته دو تا حدیث اولی صحیحه، دو تا حدیث بعدی زیفه. از اون 5 تا حدیث اون دو تا آخری هم یک حدیثه. یعنی کلا ما چهار تا حدیث داریم. دو تا صحیح و دو تا زیف. صد و پنج میان حدیث. امام الترمذی رحمه الله میگويد حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا وحی بن الجریر قال حدثنا ابي عن قتاده عن انس الرضی الله عنه قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضله حديثة كي أناس بن مالك رضي الله عنه دار بس في شمشير الرسول عليه الصلاة والسلام من حديثة صحيحة قفتي سندش صحيحه أناس رضي الله عنه مليات وان انتهاي شمشير الرسول عليه الصلاة والسلام من جهته دسجيرة انتهاي دسجيرة اشتهش از نقربوت كان قبيعه قبيعه همون انتهای دستگیره شمشیره که در پایین دستگیره قرار داده میشه به خاطر اینکه دست سر نخوره شمشیر از دست نیفت لیز نخوره اون شمشیر از دست که بیفته یه چیز دایری رنگی یا چیزی عمودی قرار میدادن گرد یا مستطیل شکل یا مربع شکل برای اینکه شمشیر تو دست قرار بگیره و نیفت این بهش میگن قبیعه این قبیله‌ای که انتهای شمشیر بود از اون دستیره از نخره بود در شمشیر رسول الله صلی علیه و خب الان این حدیث آیا تعارضی داره با اون چیزی که در صحیح بخاری اومده از ابو معمر رضی الله عنه که میگه لقد فتح الفتوح قوم ما كانت حليه سيوفهم الذهب ولا الفضه انما كانت حليتهم العلبيه والانك والحديد یک فتوحاته که در توست در صدا سی و اصحابش در زیر شمشیرهاشون نه استلا بود نه از نخره نف از طلا و نقطه هر دوتا نبوده بلکه چی بوده؟ زیورش علابی بوده حالا علبا گفته شده اون رگ گردن شطور یا گاوه که سفیده میپیشوندن دور شمشیر یا دور اون دستگیره بعد خشک میشده سفت محکم می شده اون گفته شده یا چرم شطوریه یا الاخر علابی بعضی ها البته گفتن که سرب ولی خب سرب آنکه بعدیه زیور و نقشه شمشیرهاشون خب الان یک قسمتش بس علبا بوده همون گفتیم الا بگیم رگ که در گردن حیونه و یا آنک بوده که سربه و یا آهم بوده تلا و نخره نبوده چطور جنب بندی بین این دو باید آیا آیا تعارض هست بین این دو باید خیر خیر تعارض نیست اینجا به طور عموم داره میگه قرار بر این نیست که چون شمشیر رسول الله صلی الله علیه و سلم یک قسمتی زیورش از نقره بوده شمشیر بقیه اصحابم باید نخره باشه نه هر کسی در حد توانش مانع نیست در شهر همونطور که انگشتر نقره برای مرد جایز است اگر نقشی نگاری بر روی شمشیر هم باشه از فلزی که طلا نباشه از نقره باشه مثلا مشکلی نیست درش و هیچ سآروزی هم نیست و این حدیث هم گفتیم حدیث انس را جان جواز بر این رخصت را میده که جایزه شمشیر نقشی برشمشیر باشه از نقره هم باشه و خصوصا در اون دستگیره و جایی که شمشیر انسان در دستش نگه میداره سادو شي حديث الإمام الترمذي رحمه الله مقياد حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضة سعيد بن أبي الحسن الترمذي مرسلة بالخط خب. المرسل قفتي ماز روايته هاسك الضعف الشياسير وقبلت تأقيمات الروداري سعيد برادر حسن باسريا سعيد ابن أبو الحسن أبو الحسن بدر حسن باسريا سعيد بردر حسن باسريا ميجيك قون انتهاية دسجيرية شمشير رسول الله صلى الله عليه وسلم أز نقربوده إن رباته مالباني تحسين ميكنه سادو مين حديث إمام الترمذي رحمه الله ميجيات حدثنا أبو جعفر محمد بن صدران البصري قال حدثنا طالب بن حجير عن هود وهو ابن عبد الله بن سعد عن جده قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح وعلى سيفه ذهب وفضه قال طالب فسألته عن الفضة فقال كانت قبيعة السيف فضة إن حديث زيفة إن حديث زيف شرى زيفه ألا تزعفش ألا تزعفش عبداللهس هدون عبداللهس مجهولة وإن مجهولة متفرد شده بين الروايات إن الروايات مش منكر زعفة شديدة ابریات تحسینمند داره که ارتقا پیدا بکنه به درجه حسن برشه. هود ابن عبدالله مجهوله بس اسنادش صحیح نیست. اولا اینجا هود ابن عبدالله ابن سعد از پدر بزرگش نقل میکنه. پدر بزرگ پدریش نه مادریش. گفته شده مزید ابن مالک العصری، که صحابیه مزید ابن مالک پدر بزرگ مادریش که میگه حضرت رسول الله صلی الله علیه وارد مکه شدن روزی که مکه فتح کردن و بر شمشیرش هم طلا بودم نقره بعد یک از روبات از هود میپرسه میگه پرسیدم از اون نقره گفت که انتهای دستگیره شمشیر از نقره بوده حالا در روبات قبلی اومده برای خب گفتیم این روبات منکره سد هشتمين حديث إمام الترمذي رحمه الله من حدثنا محمد بن شجاع البغدادي قال حدثنا أبو عبيدة الحداد عن عثمان بن سعد عن ابن سيرين قال صنعت سيف على سيف سمرة بن جند وزعم سمرة أنه صنع سيفه على سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان حنافيا سدنه مين من حديث إمام الترمذي رحمه الله من حدثنا عقب بن مكرم البصري قال حدثنا محمد بن بكرين عن عثمان بن سعد به الاسنادی نحوه نحو دکتر یک روایت حز ابن سیرین میکب شمشیرش بر اساس شمشیر سامرو بن جندم صاکته مثل شمشیر سامرو بن جندم چنان شمشیری برای خودم گرفتم سماره میگوید که هم شمشیرش بر اساس شمشیر رسول الله صلی الله علیه و سلمم صاکته که شمشیر رسول الله صلی الله علیه از جنس حنفی بوده حنفیها قبیله مسلمان کاظم بنو که معروف وین به هر ف شمشیر سازی قبیله بنی حنیفه که صنعتاشون همین آهنگری بوده و ساختن شمشیر هرچند که روایت ضعیف این روایت ضعیف چون در اسناد عثمان بن سعد عثمان بن سعد هم ضعیف شهیدی متابع هم روش نیست این روایت بس ضعیفه و مسئله خاصی هم که در این حدیث هست جز اینکه یکی از شمشیرهای رسول الله صلی الله علیه و سلم این قبیله ساختن رسول الله صلی الله علیه و سلم از اینها شمشیر رو گرفته شمشیرش از این قوم بوده از قوم بنی حنیفه 15 ام باب ما جاء في صفت درع رسول الله صلی الله علیه و سلم شمشیر جنگیه درع سپر ذره هم جنگیه بعدم کلاهخود هم میاد کلاهخود بازم چیه ابزار جنگیه در جنگ استفاده میشه که گفتیم اینا همه بعد از یومر بعد از اون بابی که در بحث نوشتن نامه و انگشتار بود و دعوت بود خب رسول الله صلی الله علیه و زره ها یا سپره های مختلفی داشت از اون درها که در جنگ استفاده میکرد در جنگ هم اینطوری استفاده نمیکرد معمولاً در هم از حلقات آهنه که درش به کار برده میشه که برای محافظت این که در جنگ اگر تیری اومد در جس نفوذ نکنه یا شمشیر اومد اون آهنه مانع بشه از اینکه جسم آسیب ببینه. رسول الله صلی الله علیه و آله اسباب را می‌گرفتن در جنگ. اینطوری نبود که بدون آمادگی چون پیغمبره پس زره نپوشه نه. رسول الله عليه الصلاه والسلام با آمادگی کامل جنگ میرفته با ابزار جنگی حتی در جنگ احد که الله خواست آمد رسول الله علیه الصلاه والسلام دو تا زره پوشیدن دو تا نه یکی دو تا ابن قیم یاد که رسول الله صلی الله عليه و سلم هفت نوع سفر داشتن زره داشتن که معروفترینش ذات الفضوله که در آخر حیاتش رسول الله صلی الله علیه و ابو الشحم یهودی بعنوان میگذاره مدت یک سال که ازش گندم بگیره رسول الله علیه صلی اللہ علیه از جمله سپرها و هایی که رسول الله صلی اللہ علیه وسلم داشته ذات الوشاحس و ذات الحواشی و السعدیه و فضه و البترا و الخزنق اینا هفت سپریان که رسول الله صلی الله علیه سلم داشتن و یاد شده در کتابه سیرت گفتیم پیغمبر الله جل و علیه با وجود معجزاتش با وجود مقام پیغمبرش ولی کم اسباب را میگیره و با گرفتن این اسباب به الله جل و علا تعتماد میکردن و توکل میکردن. این نبود که بدون سبب برم به جنگ با دشمن. این درسی هست برای ما خصوصا در عمل کردن به فرمودی الله جل و علا و اعدو لهم اعداد داشتن در مقابل دشمن آمادگی داشتن سپر محکمی داشته باشیم شمشیر خوبی داشته باشیم وقتی که به جنگ با دشمن میریم با آمادگی بریم هرچند که گفتیم این آمادگی جنگی بعد قبل از اون با مهیا شدن با آمادگی چیه علمیه. اول علم. اول دعوته بعد چیه؟ آمادگی جسمی، آمادگی رزمی، آمادگی جنگی نظامی. این بعد میاد. اول علم دعوته. چنانچه رسول الله صلی الله علیه و 13 سال در مکه و سالهای اول مدینه‌اش دو سال اولش اهمیت میده به با این باب تا آخر حیاتش البته ولی خب دیگه حیاتش در مدینه همراه دعوتش، تعلیمش، جهاد با شمشیرم بوده. صد و دهمین ده حدیث. امام ترمذی رحمه الله میگه: "حدثنا ابو سعید" عبد الله بن السعيد على شج. قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق عن يحيى ابن عباد بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جده عبد الله بن الزبير عن الزبير ابن العوام قال كان على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحود درعان فنهض إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد طلحة طلحة ابن عبيد الله فأقعد طلحة تحته وصعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اوجب طلحه اوجب طلحه حديث صحيح هرشانكي در اسناد شما محمد بن اسحاق دريد ولي خوب داريم در طرق ديگر كه تصريح به سماع كرد از همين حديث حديث صحيح قلبنيه ممتاز اشيارات حديث زبير بن عوام عوان كميات رسول الله صلى الله عليه وسلم در جنگ وحود دو تا درع پوشيده بود دو تا زر دو تا سفر دو تا سفر جنگي به تن داشت اهنين صخريبره در جنگ وحی زمانی که اومدن المشركين دور زدن بر اون تپه که رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور دادن که صحابه رضوان الله علیهم اجمعین بر روی تپه باقی بمونن نه اون پایین اومدن پایین اونها دور زدن و مسلمان‌ها شروع کردن به فرار کردن بر روی کوه احد رسول الله علیه و سلم رافک برای صخری ویسته که این آیه نازل میشه از قرآن فرمودید الله جل وعلا علا اتسعدون ولا تلهون على احد والرسول يدعوكم في اخراقكم فاثابكم غمنا بغم اید توسع دونه زمانی که میرفتید بالکوه و حد بالا تو دونه سعوده ولا تلوونه على احد کسیم نه کسی دیگر نمیکرد همه پول فرار گذاشته بودید همه پول فرار گذاشته بودید و رسول یادعو کم انجا رسول الله صلی الله علیه و سلم نه هدایت صخره و ما تکبر رسول الله صلی الله علیه و سلم برای صخرهای فریاد بزنیم که من زندام همه صحابه ببینن و قوت قلب گیرن شون مشرکین گفتن که ما پیغمبر خدا را کوشتیم رسول الله صلی الله علیه و سلم و انجا آسیب میبینه نیزه میاد و میخوره بر فرق سر رسول الله صلی و خون فوران میکنه و اونجا هست که پارچه رو دخترش فاطمه رضی اللہ آتش میده و در سر رسول الله صلی فرو میبره که خون ببنده اونجا و فوران نکنه خب رسول الله صلی اللہ و اونجا میخواد بیاد بالای صخره بیسه فنه هضایل سخره فلمیست سطح نتونست بالای صخره بره فاقعد طلحه عده طالحة بطل حق خام هم که معروفه الله قوراشی از عشان وباشله به جنها از بازو بیرون عابوا مال باته هردو توشون رابی بي حدیث از عشان وباشله به در سال سیوشیش هجری بود که در واقعیت جمال حسن طلحه در سن شصت و به شهادت نرسید. در اون فتنه و و الله رسول الله صلی اللہ علیه و سلم اینجا فضلی را برای تلحیب یوم می کنندن این شجاعتش چون خودش خودشم سپر کرده بود تلح در اینجا در این, این نبرد برای رسول الله علیه الصلاه و السلام رسول الله صلی الله علیه و سلم تلح اینجا تو کمرت خم کم به پایین که من روی کمرت بیستم و برام بر روی صخره چون نتونسه بره بالا حالا گفته شده چون ذره ها بر رسول الله صلی الله علیه و سلم سنگینی کرده و گفته شده صخره خیلی بزرگ بوده و یا هم اینکه آسیب دیده بودن در رسول الله صلی الله علیه و سلم در اون جنگ نتونسن که اونجا برم بالا این علت ها را میشه گفت یعنی این اسباب که نتونسه بره بالا حالا گفتیم یعنی شاید عزورهای دیگری. سبب شده که نتونست رسول الله صلی علیه خودش بره بالای اون صخره، بهتر حمله کمرت رو خم کن اینجا بیا پایین. تا من از روی کمرت برم بالا اون صخره. بعد میگه وصیت نبی صلی الله علیه و سلم حتی على الصخرة. و بعد روی کمرش و بعد روی سخره استاد بعد میگه اونجا شنیدم زبیر ابن عمام میگه شنیدم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم به تلحه میگه اونجا میگه اوجب طالحه یعنی اوجب له الجنه اوجب الله له الجنه واجب شد بر بهشت الله جل و علیه فضل فضیلت لیاقت شرفه که الله جل و علیه به تلحه میده این شجاعته یعنی همینطوری به دست نیماز سینه شو سفر کرده به پیغمبر الله جل و علیه فزیلت بعد از این شجاعت اون مردانگی هست که جانفدایی هست که برای رسول الله صلی الله علیه وسلم انجام داده در اون معرکه در اون جنگ ابوجبر طلحه وجبت له الجنه وجب كه رضي طلحه همچنین لا زبیر کراوی قساس ساده تشون هشام بشره الله ما هم رفقای این اصحاب یاران رسول الله صلی الله علیه وسلم قرار بده و در این دنیا هم توفیقمون بده مثل اونها شجاع باشه مثل اونها برای دینی الله جل و علا سینمون کنیم یک مسئله ای هست اعتقادی اینجا میگه راوی که زبرونه عوام عربه میدونه کلمات رو کجا بذاره میگه صعد نبی سعود ارتفاعه ولا رفنه حتی استوا حتی استوا سعود و استوا الرحمن على العرش استوى شما میخوای الان این ادوات لغوی که اینجا شما دارید تطبیق بدید بر فرموده الله و علا الرحمن على العرش استوى الله مستوي العرش شده اینجا میگه صعد النبي صلى الله عليه وسلم سعود كهت. رف بالايه سخره حتی استوى على الصخره بر روی اون صخره واقع شد استوا به چه معنی این در این حدیث قرار گرفتن بر یه چیز بالا رفتن یه چیزی درسته بر روی یک چیز قرار گرفت الرحمن على العرش استوى الله الرحمن بر عرش مستوی شد یعنی چی بر روی عرش قرار گرفت درسته استوا یعنی ارتفاع یعنی بالا رفتن درسته بر روی یک چیزی قرار گرفت شما الان طبق این گفته ازبر بن عوام اون کسانی که قرآن به زبانشون نازل شده داره آیای قرآن را تفسیر می درسته؟ و این تفسیر حق و این تفسیر صحیحه و این چیزی که عرب فهمیده این چیزی که اینهایی که قرآن به زبانشون نازل شده از این کلمه فهمیدن؟ نه اون چیزی که چی بعداً اومدن بعضیها این آیه را بر اون چیزی که صحابه میدونستن از این کلمه و محتواش و معناش اومدن قرآن رو تفسیر کردن گفتن نه استوا که نمیشه گفت که الله بالای عرش رفته نه استوا یعنی چیره شدن انگار عرش الله مال کسی دیگه بوده الله اومده از دست کسی دیگه برداشته چیره شده برش معنای چی میده معنای بدی میده یعنی انگار که الله مده غصب کرده این عرش را از کسی دیگه گرفته چیره شده یعنی چی مال کسی دیگه بوده اومدن از یک معنای فرار بکنن از عظمت الله و استواش بر عرش فرار بکنن افتادن در یک معنای کفری دیگر اومدن الله را قیاس گرفتن اون چیزی که الله منعشون کرده بود در قرآن قیاس گرفتن بر خودشون اون قیاسه سبب شد که یک معنای کفری را برداشت بکنن آیه قرآن معنای کفری نمیده قلب اونها مریض بود فهم و درک اونها مریض بود الله اگه در قرآن نگفته ف میگه نه گفته ل کممثلیهشه؟ مثل الله کسی نیست وقتی الله و ال میگه کسی مثل الله نیست. و برای الله مثال نزنی چرا مسال خودت میزنی؟ الله رفته بالا الرحمن عاشق. اش رفته بالا. چوبونه رفته بالا میگه میشه الله بره بالا و ا آخر پس الله بس یه جویی هست یه جوی دیگه نیست. اینا همه معانی هست که تو برای الله چی دی و برای یخصخن الل چدی الله که نگفت که من مثل شما رفتم بالا یا مثل پرنده رفتم بالا. الله خالقه تو مخلوقی. تو اجازه نداری الله را با خودت قیاس بگیری که آقا که مثلا چون من یا فلان حیوان و فلان جاندار و فلان مخلوق اینطوری میره بالا پس الله هم باید اونطوری بره بالا زمانی که اومدی قیاس گرفتی تو افتادی هرچی در کفر افتادی در تحریف کلام الله افتادی این کاری که متکلمین کردن و فلسفه کردن اون فلسفه بافی و سفسطه بازیشون سبب شد که در این انحراف بیفتن و قرآن را بر خلاف ظاهرش تفسیر بکنن ظاهر قرآن ظاهر سلیم و سالمیه و هیچ تناقضی هم نداره الله جل و از خودش داره نقش میکنه که من موسی بر هر شدم استوای الله هم یعنی اینکه الله جل و خارج از مخلوقاتشه، مباينة از مخلوقاتشه الله جل و علا از مخلوقات. مخلوقات چیزی در مقابل الله جل و نیستن و این مستقیف فرمودی الله جل و علا والسموات بیامینه. کل آسمانها و زمین در کف دست الله جل و علا مطیه یک چیز ریز و کوچکی هستن هیچ چیزی در دست الله جل و علا مخلوقات خیلی ریزن. مخلوقات چیزی نیستن در مقابل عزمت الله جل و طب بن ال 111 من حديث انبا 111 حديث امام الترمذي رحمه الله ميقول حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان بن عيينه عن يزيد بن خسيفه عن السائب بن يزيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عليه يوم احد درعان قد ظهر بينهما قد ظهر بينهما حديث مسهيه عالی است سوابن و یزید رسول الله صلی الله علیه و سلم روز وحدت و دارف پوشیده بودن چنان تدریشتی. قد ظاهرا بین هما ظاهر بین هما یجمع بین هما. یعنی دو تازر رو روی هم دیگه پوشیده بود. یکی روی دیگری. انگار یکی به داخل وای دیگری به بیرون نیم. یعنی روی همدیگر قرار گرفته بودن. ظاهر بین هما یعنی جمع بین هما. این معنی مظاهره هست. سوابن و یزید هم که زمانی که میدونید دیگه یه سالون هالون الصحابه هست که در حجت الوادع زمانی که او را بردن بودن با خودشون هفت سالش بوده چون اون صحابی هست که کم سن و سال بوده ولی بله خب مراسیل صحابه مقبوله مراسیل صحابه صحیحه و تره همین امام بخاری استدلال میکنه به این مراسیل صحابه مصاحبی که در اون جایی که نبودن ولی خب اخبار اونجا را به ما نقل کردن لازم نیست که بگن که از شنیدن صحابه همه عدولا عادله 16 ام این باب باب ما جاء في مغفر رسول الله الله عليه و علیه چیزی که در مورد کلاه خود رسول الله صلی الله علیه و اومده کلاه آهنی که بر میکنن در جنگ الا از جنس آهم قبلاً بوده که نیز یا شمشیر چیزی بر سر آسیب نزنه. سده دوازدهمین حدیث. دو تا حدیث سریم داریم باب امام ترمذی رحمه الله میگیاد حدثنا قتیب المساعد قال حدثنا مالک بن آنس عن ابن شهاب عن آنس بن مالک رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه مغفر فقيل له هذا ابن خطل متعلق بأثار الكعبة فقال اقتلوه فقال اقتلوه حديث البخاري ومسلم من اسم الله رضي الله عني جاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد مكه شده وكلا خوديش پوشيده مغفر مغفرت غفره كستر مش ديك صارومي بشونه يعني من كلا خود كلا خود پوشيده رسول الله عليه الصلاه والسلام كلا هنين فقيل له هذا ابن خطل اشار كذا يك از اصحاب رسول الله عليه الصلاه والسلام بيگفته شده ابو برزه بوده تي ابن خطل هاش مسلمان میشه بعد مرتد میشه برده هم داشته مسلمان میشه چون روی اسلامش باقی میمونه مرتد نمیشه او رو میکشه مسلمان رو میکشه به خاطر کشتن مسلمان و ردتش رسول الله صلی علیه وسلم خونش رو هدر میکنه حالا یک بحث فقی خیلی طولانی هست اینجا جاش نیست که آیا در حرم در مکه هم جایز قصاص برپا بشه و یا کسی کشته بشه هم بحث مباحث فقیه اینجا این شخص الان رسول الله علیه حکم هدر بودن خونش رو میده حتی اگر میگه که اگر دیدید که به خونه خدا چسبیده به پارچه یه خونه خدا چسبیده او را بکشید. که او را میبینه ابو برزه که چسبیده به پارچه خونه خدا متعلق به سار الکعبه جس به خونه خدا به پارچه خونه خدا فقال اقتلو بکشیدش خدا رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه. میگه الله به من اجازه داده یک برهه زمانی از روز که من کسانی را در اینجا حکم الله را برشون اجرا بکنم یکی از اون اشخاص کیه یک از اون اشخاص ابن خطله به خاطر ردتش و به خاطر قتل یک مسلمان رسول الله صلی الله علیه و سلم حکم بودن خونش رو میده آیا این حدیث تهاجزی داره با اون چیزی که از رسول الله الله علیه وارد شده که که وارد مکه شده و عمامه سیاه بر سر داشته انه النبی صلی الله علیه وسلم دخل مکه یوم الفتح و علیه عمامه هست؟ نه تا تاروز نیست چون احتمال داره عمامه را بر روی کلاه خود پوشیده اون کلاه آهنی عمامه را بر روی اون پوشیده و احتمال این هم هست که ابتدا پوشیده بوده در معرکه بعد از اینکه امور آروم میشه و مشتکین تسلیم میشن و معاندین کشته میشن اونجا رسول الله صلی اون کلاه خودشو در میاره اون کلاه آهنی و عمامه رو بر میکنه این احتمالشم هست ولی اون که عمامه هم پوشنده باشن لوجهه عمامه رویه اون کلاه خود پوشیده باشن 113مین حدیث امام ترمذی رحم الله میگوید حدثنا عیسی بن احمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني مالک بن انس عن ابن شهاب عن انس بن مالک رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه و سلم دخل مکه عام الفتح وعلى رأسه المغفر قال فلما نزعه أي نزع المغفر فلما نزع جاءه رجل فقال له ابن خطل متعلق بسار الكعبة فقال أقتله قال ابن شهاب وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يومئذ محرما خب سلم فتح مكاس جنگ رسول الله صلى الله عليه وسلم احرمنا بشدة ونجا برا يحج عمرنا رفته رفت, رفت برا الجنگ إن اولا میگن اگر کسی بره به مکه بدون احرام جایزه چون اینجا رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر امر دیگری رفته بودن و جایزه بدون احرام انسان بره وارد مکه شدن رسول الله علیه سات و سنت سمان و میگه و بر روی سرش چی بود کلا خود کلاه آهنی فلما نزع ای نزع المغفر وقتی که اون کلاه خود رو برداشت از روی سرش اون کلاه آهنی جاء رجل فردی اومد که گفته شده گفتیم ابو برزه هست اسلمی گفته <تصفيق> شده فقال له بهش میگه اون صحابی ابن خطل متعلق به سر کعبه نه و جه ابن خطله چسبیده به پارچه کعبه چه کارش کنم گفت که بکشید بعد میاد اون رو میکشه قال اقتلو قال اقتلو این دو تا حدیث باب 16 سبحانك اللهم وبحمدك سبحان الله وبحمدك وصلی اللهم محمد و ال محمد